سلام خانم روز بخیر سلام بفرمایید نسخه دارید؟ بله بفرمایید این نسخه دوستم است لطفا نسخه را به آقای دکتر بدهید چشمه. ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم یک بسته آسپرین به شما می دهم. روزی سه قرص بخورید ممنون ببخشید خانم، یک خمیردندان و مسواک هم می خواهم چه خمیردندانی می خواهید؟ خمیردندان و مصفاک در این ویترین است لطفاً این خمیردندان کوچک را بدهید و این مصفاک را مصفاک چرنگی می خواهید؟ فرقی نمی کند. لطفاً یک مسواک آبی بدهید بفرمایید داروی شما آماده است. داروها با مسواک و خمیردندان و آسپیرین چهار هزار تومن می شود. لطفاً پول را به صندوق بدهید. متشکرم.